این المعصومین مازال هم رو شد روایاتی رو که در باب نجوم مطلقاً ذکر شده به مناسبت نجوم در این کتاب مرحوم صاحب وصایع تو کتاب الحج ابواب السفر آداب سفر اون مقدمات به حساب و ذکر کردم شاید هم ولی علم الله یه مقدارش مخوره این ترجماوره که روایات نجوم تو ابوانگل حج ارده باشه یه مقدارش می‌خوره به تبعیت ایشان از مرحوم فقیح من لایحذر در من لایحذر هم بعض از این روایات نجوم تو خوندید چند روایت اولیش از صدون بود اینها رو توی کتاب الحج آورده لکن تقریباً اواخره یا آخر بابی یا اواخر چون دقیق نگم بعدشام بابی از حج هست هر حال اواخر کتاب الحج و آداب سفر و زیاره مثلا اینطوری بین علما ایشون هم اوائل کتاب حج و حسب این جلد دیگه دسته مانند جلد هشتم صفحه 200 به اصطلاح 68 شروع میشه این باب 14 از ابواب سفر تا 272 در این روایت در کتاب عیاشی بود در از یعوب بن و توضیح داده شد که یک نکته داشت کان و یبولون یمترو اینجا یمترو به صيغه معلوم بخونی نو او کلا و نو او کلا یومته این ربایت رو اصحیم فعلا که اونی که الان پیش ما موجوده است که مرسل اعتماد بر اون بسیار مشکله مضافن به این که این ربایت مبارکه علا تردید صحتش واقعا مثل آقایی مبارکه مشرکه چون اینا مخواستن بگن که با افعال الهی یعنی خداوند در افعال هم شریفی داره توحید افعالی رو قائل نبودن مثلا باران از فعل فلان ستاره است نه در اصطلاحشون ستارگان خاصی بودن این در این کتاب تاریخ نجوم اسلامی که از کردن این مستشرفه نوشته و انصافان هم کتاب خوبی راجع به انوام و نو توضیحی داده من هم چند بار خوندم هم در این کتاب هم در کتاب المفسر فی تاریخ العرب قبل الاسلام اون دکتر جاد علی اونم بسیار زحمت کشیده یه مقدار انواع اونجا آمده چون یکی از فرهنگ های جاهلیات بوده خلاصش اینه حالا من هم چون نفهمیدم چون بالاخره آخر نفهمیدم حالا خلاصش عرض میکنم. چون عبارتشون در تفسیر نو واضح نیست احتمالاً میدم خودش مطلب فی نفسه واضح نبود اونم که ما نفهمیدیم اصل مطلب یعنی شبیه یک مطلب سری بوده مثلا یه ستاره میگیرن موتنه امسال یه که بارون شروع میشه بارون خوبه؟ از کجا از این ستاره؟ این تفسیر نورو که نوشتن در داخل در این کتب لغت مثل کتابایی که آمده کتابایی که شعره حدیث آمده کتابای تاریخی که کامده کتابای نجومی که آمده یه چیزایی برای نجوم گذاشتن برای انواع گذاشتن خیلی آدم سر در نمیاره که این دریان چه بوده مثلا انشالله دقت در شماره باله شماره ده در همین با حدیث بعدی شهید ثانی اینطور طور میگه حالا هم رواتا نوع داره تو اون روایت بله نوع نداره بله اونجا نوع داره میگه حالا محمول بر اعتقاد مسخلیه النجوم فتاثیر و نوع سقوط و کوکبن کوکبن فی المغرب و طلوع و رقیبه فی مشرق چون اینا یک اصطلاحی درشن که این ستاره رقیبی داره میگم اینا هم چیزی نفر داره نجومی تحلیلش چیه. خیلی سردار نه بردن. و احتمال میدن شبیه مثل تلسماطوانیلی بوده علم سینه به سینه بوده همون کهنه و مثل سحره و اینها میفهمیدن مردم عادی علمی نبوده مثلا میگن ستاره ای مریخ چیز یودرک برای یوسفی بوده مثلا یک ستاره ای در وقت غروب آفتاب غروب میکردی که از اون میاد بالا گفتن این نو اشراف اون آمد پس چنین میشه باران میاد یا باران نمیاد این رو نو و جمعش او انواع میگفتن یومتر و یعنی اگر این ستاره در بیاد باران هست این درنما باران نیست این جوری. این مراد از نو در این اصطلاح اینه که هنوزم من حقیقتش نفهمیدم نه رئاتی بموصل نداره هیچ ربطی نداره نو نه این آخرش حمزه است نو انوا با حمزه اون عيبه <تصفح> مثلا قیل مقافي بود که آ شیخ انتخابش بود اینجا نو با همزه است اون نوعه که شما میگن با اینه و نوعه ثبوت و, و کوکبن فی المغرب و طلوع رقی میفیل مشرق اصلا تو عالم اصول بحث رو دقیق میگم کردم در این کتاب تائیدونج مست همینصف شرق شنگروزه خیلی هم سعی کردم بفهمم باز هم نفهمیدم عبارات ایشاره با دقت خوندیم یه محصلی که خودم بفهمم یعنی خودم کار ندوشه شما به عبارت این مثلا این عبارتی که مرحوم شهید نوشته واضحه تشخیص میگم داده نشد مثلا دیگه مراد از نفت ستاره هلانه برج فلان یه چیزی که مقابل علمی داشته باشه لذا احتمال نهیم که نبوده یه چیز خاصی بوده که پیرمردان میفهمن یا مثلا کهنه و سحره و اینها میفهمیدن اینجور نبوده که در کتب علمی بیاد و اصطلاح علمی ما داشته باشه و ارزم کردیم شاهد بر این که این مطالب باطل بوده الان این پیش ای که در نجوم و شناخت سریارات و رصد آسمان هست و قطعا در اون زمان یک میلیاردش هم نبوده یک, یک, یک میلیاردش هم نبوده معزالک همچین اصطلاحی الان نیست و همچین حکمیان الان نیست بگر مثلا فلان ستاره ما در وقت در فلان شهر در مثلا کشور عربی اگر در وقت مغربی اون سال باران میاد اون اینا چین چیزی نیست ارز کردم، من حالا یک توضیح هم بعد ازمارم یک چیزی بوده که بر اثر تجربه ها بوده بعضی کتاب قدیم جایشان نیست اینجا ارز بکنم مثلا نوشته یک کسی که من پنجاه سال نوروز رو رسط کردم خودش از جوانی مثلا نوروز اگه یک شنبه بود، این طور بود، دوشنبه بود، این طور بود تقریبا احکامش در این هفته شهر روز ماه، روز هفته فرق میکرد خب این یک بحثی که میگه من رسط کردم و محاسبه کردم محاسبه به این معنا فقط تجربه نه علت تامنه حدیث شماره نه که در اینجا نرد شده ایشان از کتاب سیدن و تاووز الله الله ترجم کردیم سال و سال چرا این حدیث واقعا این قدم منشال حدیث در کتاب فرج المهموم ذکر شده در فرج المهموم یا فرج الحموم دو تا اسم بیشتر مهموم معروفه فرج المهموم ان محمد ابن بسام اینم بله از کتاب تعبیر و کلینی در یک جا تعبیر رؤیا آمده یک جا تفسیر رؤیا زارن یک کتابه این کتاب برای کلینی ذکر شده یعنی هم شیخ ذکر کرده هم نجاشی این کتاب ثابته اما طریق مرمون سیمتا این کتاب نمیدونی تازه این دو هم الان مرسله طریق هست حضر کردم الان اعتماد ما رو این طریق بسیار مشکله اون هم خیلی مختلفه. در یک نسخه فرجی ابن محموم فرجی ابن محمود محمد ابن غانمه در کتاب مرحوم بهار محمد ابن سامه در این کتاب محمد ابن بسام ظاهرن حالا غیر از مجهولیتی چیزی نمیتونیم تشخیص بدیم قال ابو عبدالله قال قال ابو عبدالله قومون یا قلون نجوم اسح همون چون در رؤیا داره جز اون من سلطتن ور و این جز اون من نبوه استراحی داره در رؤید سبین جز هست اون هست که درسترشه همون جز اون من ستتین و اربعین جز امن و نوبه ودالکه امام فردن هوا کان از صحیح نجوم به اصطلاح لم ترد شمس علا ابن نو و علی امیرون وقتی رد شمس حساب نجوم به هم خورد فلم ما الله عزیز و از شمس علیه ما لل فی ها علماء نجوم علماء نجوم به هم خورد رو خب هم به لحاظ مسلر و به هم به لحاظ سرد فعلی و هم الان تصدیقش بسیار بسیار مشکل حدیث شماره ده که در این کتاب این حدیث از زمان شیخ توسی یواشه آش شروع شد از خلاف شیخ توسی من در کتاب اهل سنت ما الان دقیقا مسترش کردن توسیه هنوز یاد داشت نکردم اینجا بعد در کتاب شیعه مثل ذکرا و کتاب علامه و کتاب معتول محقق و ان زید ابن خالد جوهنی به نظر سهل جور دیگر ایسم میشه اونا الان تو زهرم میست هد به اصطلاح اون برامدگی زمین رو میگن هدهیبیه یعنی یک برامدگی مختصر هدهیبیه که الان بهش میگن شمیسی هایونی که از مکه در این طرف جده برگردن تو راه نوشی شمیسی میگاه این شمیسی همون های هدهیبیه هست الان اسمش شمیسی دیگه فالهدوییه فی افر سمااتن اس یعنی بعد از یک سماه سماه در اصطلاح عرب آسمان مثل ما میگن آسمان قرب مثلا یعنی باران سماه کنایه از باران یک آسمان به زمین اومد بله کان اس لیل فلن منصرف الناس پیغمبر فرمودن که هل تدعون قال رب کو خدا چه فرمود قالو الله رسولو علی قال ان ربکم قال من, ابا من عبادی مؤمنون بی و کافرون بلکواکه و کافرون بی و مؤمنون بلکواکه نرس کردم چون در ذهنیتشون این بود که مثلا خیال میکرد و که مثلا خدا در آسمانه و تدبیر زمین از اونجا میشه علم نجوم که آمد چون میگه مردم ای بودن گفتن نه تدبیر در آسمانه اما خدا نمی‌کنه این تدبیر رو نجوم انجام میدم این سر اینکه گفت کفر و شرک و اینهای شد, این شد. ف من گاهم موترنا اینجا مترنا به بسیغه مجهول بخونی به فضل الله و رحمتی فضل که مؤمنه بی و کافر اند و من گاهم موترنا به نوع کلا این نوع ام هم اینجا همونه فضل که کافر اند بی و مؤمن بلکه این روایه از کهم در کتوله ما آمده که بعد منشئ این شد که فتحه بدن که مرا از علم نجوم کی باطله این تأثیر نجوم و سیارات روی کره زمینه یا تماما برای نجوم باشه این انکار خداست یا خدا و اونها با هم مشرکون در این روایت داره که این روایت ایاشی شماره هفت مشرک بود در شماره 10 کافر بود نو آن هست این نمر کلام اگر نگفت خدا و انوا این میشد مشرک اگر می گفت فقط انواع موشد کافر، اگر می گفت فقط خدا موشد مؤمن. این خلاصه ای این بحث این راجب طبعاً رو باید سندش از نظر ما مسادر ما واضح نیست این خلاصه بحث راجب دو بابی که در کتاب وسائل او برای مسئله نجوم از این باب ارز کردیم مرحوم صاحب بهار ما یه مقدار از روایت چه خوندیم یه مقدار از روایت بهار رو که از مسادر متعدد بود به مناسبت های متعدده از کمی ای کاش این صاحب بحار رو اگه بخوایم به حال بکنن این روایاتی که داره مضمون واحده اینا رو پهلو هم قرار می دادن خیلی خوب می شود. یعنی خیلی راحتتر انسان به اسطلاح از روایات استفاده می کن کرد. ارز کردم روایاتی که در بهار فراوان ما یک مترس رو خوندیم و دیگه حالا اینجا وقت نداریم بعضی رو امدت که دارای نکته لطیفی است. همیشه میخونم، آره خودشون مراجعه بفرماند و باب مفصلیه، حرفای خوبی هم داره. اصلاً یک روایت به شماره 15 کتاب فرج المهد، من عرض کردم کتاب فرج المهد رو مرحوم سید الطاووس مرقوم فرمودند به خاطر دفاع از علم نجوم. تعلمش حرام نیست، علمش کفر نیست، فسق نیست الی و حقم هست. لیکن منجمین اشتباه کردن این یک دو باید قائل به اعتقاد به اینکه که دجوم تأثیر داره یا مستقلن یا به جعل من الله نداشیم یا شرک لازم بیاد یا کفر لازم بیاد این خلاصه حرف مرهوم سیدم تاوود و اینشان اصرار داره که اثبات بکنه این علم حقه حتی با این علم میشه به خیلی از ذرافت ها رسید ارز کردن یعنی با این علم نجوم حتی میتونید شما به این سبزی که تو خونتون کاشتین مثلا چهار تا تره در آمده با علم نجوم و هر کدوم از اونها تشخیصو اینقدر نهاد دیگه حقه این یک دو این علم در قرآن اصل داره سه اهل بیت با این علم آشنا بودن چهار اهل بیت حقیقتا این علم میدونستن 5 حقیقت اهل بیت یک حقایقی از این علم می‌دونستان که حتی منجمین هم بلد نبودن این مجموعه که هی ما در نقل کردیم این است که مرحوم سری سه تابو سهم الله در این کتاب فرج مهمو ثابت میکنه اثباتش بکنه لذا من بعضی از روایات رو میخونم و منشودری هم که ایشون داده در بعضیاش هستن سر در نمیاریم که اصلا چیه مثلا میگه روی تو به عدت طرق توراق الاعيوнос ابن عبد الرحمن فی جامعه السعیب به اسنادی قال قول الابی عبدالله حالا اگر این قاله یعنی قال یونوس قول الابی عبدالله از که از الابی عبدالله نقل نمیکنن حالا ایشون اشتباه کرده یه یونس دیگری بوده اشتباه کرده نمیدونیم علم و علم الله دقت करिए جل تو که اخبرني عن علم النجوم ما هو قال علم من علوم الانبياء حالا اونا صاحب سال اعتقاد که این حرام است علم نجوم تعلمش حرام و يجب احراق کتبش <تصح> ادجینه این یکی این وره اون یکی اون وره حالا مثلا ایشون این روایت رو آورده قال هو علم من علوم الانبياء قلت كان علي بن ابي طالب السلام قوله كان اعلم الناس به بله دقت باز این اوله خب این رو الان ما واقعا احترام ما برای سنتها وجه او خودشه اولا یونس بن عبد رحمان از مصادر نقل نمی کنه این یک دو در مصادر ما جامعه صغیر میشه نسبت نداره این کتابی برای یونس نقل نشده ایشون جامعه داره اما الجامع الصغیر نداره ایشون این یه خاره که من هم صدرا که واقعا مح... منم نمیفهمم. این یعنی انصافا منم متحیره هم عرض کردید ایشون دو جا از محمد ابن رستم میجید مرحوم ما تبریه امامی داریم مسلما هم مثلش محمد ابن جریر رستمه ایشون چپه نامی کنند اینو این سر چپکی ایشان مثلا جامع سقیر به یونس نسبت میدن در مصادر ما جامع سقیر به یونس نسبت داده نشده اصلا اشتباه کرده کتاب دیگری را اختیارشان قرار گرفته جا به جا معنا کرده واقعا ما هنوز نمیفهمیم چون که مرد بزرگوار اهل معنی اون وقتم آخرش داره قال قل تو در ابی الیاس خب بیونس اصلا ازیابدار نخل جا موسریش جا کبیر است اصلا یونس ان ازیابدار نخل نمیکنه دقیقاً ایشان روی این دقت بکن روی این جور روایات بیا پس هنوز علم شریف از علم انبیاذ علیه الی این آثار رو ایشان بار کرده. بازی یک کتاب دیگه هم این ها نقلن من اصل من اصول اصحابان ها اسم و کتاب و به خب مالی کشیه تجمع، اسم دو بیبریم. ایشون شاید در نجومش شیش بار اسم کتاب و تجمع، هفت، بار اسم معلیف کتاب، خیلی هجیمه و به اصناد نام این کتاب تجمد خب ما این کتاب تجمع، مالی کیه در یک جاش داره که این کتاب در سال 233 معلیفش نمشته، نسخه هم که من دارم 23 خب عزیزی من وقتی که انسان سال مختصات نسخه میگه اول اسم مؤلف رو بگه بعد مختصات نسخه مضافن به اینکه که در کتب کتاب ازهاب ما غالبا تجمع کم داریم از زیه و تجمع داریم از تجمع و مروع هم داریم و خیلی وقتی هم اسمیه که در زمن مجموع است، همین کافی جلد ششم کافی مرازه فرمون کتاب و زیه و تجمع و مروعه تجمل مستقل نداری یکی دو نفر نسبت داده شده که اونا قابل انتباه با این البته من نگاه کردم بعده تجمل اسماله محمد بن عیس بن اوبی احتمال میدم این در اطلاع شد مرادش این باشه البته احتمالی که من میدم چون تا حالا این مااصر کتابخانه کتاب حسن نشه ایشون هم گیر کردن این مال کیه چیزی نمیفهمه تجمل احتمال من میدم چون این تاریخ هم میخوره به محمد بن عیس بن خب خیلی عجیبه چند مورد از کتاب و تجمل کتاب و اسم و تجمل نقل میکنه معلمه اسم میبره؟ خیلی عجیبه تاریخ نسخه رو نقل میکنه <تصفح> اسم معلمه نمیبره نه نمی. حالا تصادفاً یه چیز عجیبتر البته من فکر میکنم این اشتباه باشه نه نه نه زاهش چون میگه نسخه 238ه، یعنی مجموعه دو تا تجمل نغمی میکنه این معاصر در همین کتاب کل... کتابخانه دو تا نغمی می‌کنه. احتمالاً دو تا باشه، نه هر دو نمی... شیش مورد 6 مورد، دو، مورد، دو تا یک 1.6 راست هم میگه. انصافاً دو تا کتاب یک معلب نمیخورن ایشون جداش کرده. حرف بدی نیست، حرف این چخ. احتمال خودم این از که مال کتاب محمد بن یسین نوبیت باشه. احتمال بدوی خیلی قوی قوی نیست. خیلی از ایشان ضعیفه یعنی واقعا برای ما اینا تعجب‌آوره این کتاب رو نقل میکنه اسم مؤلفی نمیبره خیلی عجیبه حالا در این کتاب اسپرینگر که من دارم فهرست شیخ و اسپرینگر چاپ لیدن به اصطلاح میگه نسخه خیلی دقیقه نمیفهم فکر دو تا تجمل نسبت میده که نجاشی در انگلیسی تجمل چاپ شد از این چند نفر به اسم چون هست دو تا در اسپرینگر هست هر دو رو تهمون نوشته من دقت کردم با زحمت دقیق کلامی <تص> جیم نیست <تص> <تص> <تص> تحمل، آن نمی اون تحمل، تجمله حالا اسم کتاب برای ما رو نیست <خرج> که این واقعا چیه؟ مال کیه؟ خب، بله، ایشون میگه ان، ان زراره، بینا حال سند رو س... به اسنادی اون آها آه چیه؟ ما نمیفهمیم فهمیم ان جمی، ان زراره، ان عبی جعفر علیه السلام ام من ذکر خیلی عجیبه عبی جعفر ام من ذکر امام باقر ام من ذکر اون که خیلی عجیبه ولی چرا ان زراره عمن ذكر ابي جعفر اصلا ما ندارم چيزي ان جعفر عمن ذكره يا جعفر كان قد علم نبوت و نوح عليه السلام به نجوم خیلی عجیبه اینم واقعا الله میگم یک چیزهای عجیبی رو مرحوم سنتابوس نانیکرد که الان این علماء بخونين مرحوم مجلسي نوشته که این باد علماء خونده به شراسته یعنی از راه علم نجوم فهمی در منجمین که علی شخصی به نام پیغمبری خواهد آمد به نام نو حالا چین معنای عجیبی رو در این کتاب از جمله روایاتی که ایشون در اینجا آوردن که ما نخوندیم و بد نیست اطلاع بر اونها چرشم این یکی در از چون همه که بله این دوباره دیگه همه جلد هشت حدیث شماره پونزده و شموزه این دو تا شماره از کتاب مرحوم سیدون تا 20. از جمله روایتی که مرحوم به البته بازم دار دیگه من نمیخواهم بخوام خیلی طول میکشه اون ای که ذریفه میخواهم نکتهی که داره بله باز ایشون داره که وینا به اصانید انال حسین ابن عبیدالله الغزائری و نقل تو من خطی من الجز استانیم من کتاب دلائل تعلیف عبدالله هدن جعفر الحمیری به اصنادیه انبیاء سابوری همرا هم حذر کرده شاید عمره نیزید بیاء سابوری بعد ایشون داره این نیلیف نورت الانبنجوم لذده و هیه معیی به تون انداز فه امکان فیار اسمون ترکت حضر داره نه بعد حضر شروع میکنه تعد و تواله و قلت فعدد تا قال کم تسق شمس القمر من نور آقال آداشو این آخری بعد حضرت می بله اشکال نداره و هابلیس یعنمون نجوم الا اهل بیت من قریش و اهل بیت من هین این این مطلب رو باز ببینید قال وجب توفی کتاب اسم اسمه کتاب و تجمع قال ابو احمد عن حبس کسی که از حفظ نرم میکنه راویشه ابن ابی عمر احتمال داره اینجا مراد اون باشه باز از همین که شماره این شماره سی و رو خوندم سی و 34. شماره سی شیش یک شرح مفصلی است به فلک و تصوراتی که منجمین اون زمان از فلک داشتن از خاندان بنی نوبخت چون خیلی هم طولانی است بود رو نسبتاً خیلی طولانی نیست نکات لطیفی داره و مجلسی هم شرحی داره برای اون مطلب این شاف... این بخونید البته ایشان نوشته که ما در بعد این عبارت که اینجا داره در, در کتب ندیدیم خب دیگه اگر همون ارجاع به اونها بشه بله از روایتی که قابل استفاده است روایت شماره سی از کتاب نوزحت الکرام و بستانال العوام ایشون نوشته این کتاب تعریف محمد ابن الحسین ابن حسن سراویه من نمیدونم این ظاهرا اشتباه کرده ایشان. این کتاب مال چیز بستان که نوزد چاپم شده به فارسی تازگی چند سال یه چاب شده ندارم من چاپ شده این مال سید مرتزا ابن داعی سالیشون شده محمد ابن حسین نویشونی و ها در کتاب خط توه به عجمیه مرالش فارسیه تکل لف نامه نقل یه عربیه زاران خودشون رو عرب نبودن یکی سیر خواستن برایش ترجمه کردن فقال ما هادا لون بسا من عرب او تا... یا من عرب او عرب او و, و رویه انها اینه ما خواهم بخوریم را رو که این روایت این به فارسیش در همین کتاب مطبوع هم آمده به نقل این کتاب خانه سمتاوز. ایشون شماره صفحه هم داده که در این کتاب در جلد دوش آمده این مرحوم سید مرتزا این از بزرگان اصحاب استاد منتج و دین خوب دقین این اسمش مرتز است این غیر از س درربش شما على روداد که این غیر از سید مارتزای معروفه اشتباه نشه اون سید ممنتظ اسمش محمد محمد ابن حسینه. این شاید میون منچه اشتباهش همین بوده. این اسمش مرتز است دو تا بر مرتزا و مشتباه این اسمش اون مرتز نه اینکه کنیش این لقبش رو مرتزا باشه. اما ابن ابادایی معنی ابو بزرگم تو اینه اعلام میشه ترجممش آورده روی ان هارون الرشید اینو از روایتی است که خیلی نکته‌های لطیفی دارین روایت البته سند نداره ضعیفه تا که بس الی موسی بن جعفر علیه السلام فاحذرهم فلان ما حاره انده قال ان الناس ینسبونکم یا بنی فاطمه الی علم النجوم این جزء هم روایتی است یه یهلق بلد میده اصلا میگه مردم میگن شما نجوم بردی و ان معرفت کن بها معرفتون جیده خبود که اینغم برای به صح نسبت میدنید نمیم گفتن خاندان رسالت هم مردم صح نکنن نجوم بردن علوم قرید و رنگ و استولاب و تلسمات و مردم و از این راه به خودشون کشیدن و ان معرفت کن بها معرفتون جیده و فقها ها الام م... اصلا خیلی بعید این تعبیر زمان ها حرشود و نوستم نجرفت و فقه ها الام یقودون ان رسول الله قال ادا ایزا ذکر و فی اصحابی ایزا ذکر فی اصحابی فسکتو. و ایزا ذکر و القدر فسکتو و ایزا ذکر و النجوم فسکتو این جزا روایت آنبه است که از رسول الله نردده مراده ما روایت مطلقه این روایت الان موجود ها این روایتی که ایشون اذا ذکر و النجوم فسکتو الان هم بین علمای آنبه موجوده اگر آن خواستن مسترش ببینن این روایتی که الان که در اینجا آمده این, این کتاب 276 به ها شماره 74 این رو از درر المنصور سیوتی نقل کرده هست در درر المنصور برمان عن ابن مسعود قال قال رسولا ازا زکر اصحابی فهم سکو ازا زکر قدر فهم سکو ازا زکر اتن نجوم فهم سکو حدیثی بوده منصور به عبدالابن مسعود هارون به موسی جعفر ارزیم کنه شما علم نجوم بلدین؟ از اون سلطر به پیغمبر اینجور نسبت داده فقال علیه و امیر المؤمنین بله فقا و انه بله قال و از اون امیر المؤمنین کان اعلم الخلائق به علم نجوم و اولاده و ذریته و الذین تقول و شیعه به امامته کان و آرفینه به ها پس با اون روایت را تو به چه کار فقال له الكاظم علیه السلام هادا حدیث و رعیف و اصناد متعون و متعونون <تصفح> این فکر نمی کنم این اصافه خیلی تعبیر عجیبیه اصلا نه زمانش مسائل با این خیلی به نظام آثار جل خیلی لاعهتون علیه خاله حالا موسیقی جعفر فرمودن هادا حدیث و رعیف و اصناد اون متعونون فیه والله تبارکتالا قد من دهن نجومون بخت شروع نکنه من در بحث دیروز اگه یادتون باشه روزهای قبلم که یه مقدار بحث نجوم رو مخصوصاً سر انتاوس و رو تاییدش با آیات کتابی تمسک کردن این یک روایت هست که تقریباً مجموعه آیات کتابی رو آورده. چون گفتین یک بحثمون در آیاته این روایت تا اونجایی که من می‌گم تنها روایاتی است که مجموعه آیات کتابی رو آورده. آیات کتابی در مد علم نجوم ولولا انن نجوم صحیحه مامده هالله عزوجه هم ولانبیا کان و عالمین بها و قد قال الله تعالى این آیات فی حق ابراهیم خلی رحمان و کداله که نوری ابراهیم ملکوت سما این ملکوت رو به انون زده هم ملکوت سماوات الارد ولیکون من الموخنین و قال فی موز ان آخر فنور نبرسن فی فن نجوم فقال علمی سقیم این جور معنا از راه نجوم شناخت خیلی عجیب آدم بر از رو بد وجدان پیش که به دفتر و نجوم نداره حالا وقتی از نظر محض به نجوم فقال الیسرین خلولم یکون عالم من به علم نجوم ما نداره فیها و ما قال الیسرین و ادریس کان اعلم اهل زمانه به نجوم و الله تعالی این آیاتی است که بالنجوم بدعکسن به مواقع نجوم در سوره واقعه و انه لقسم لو تعلمون احدی و قال فی ان آخر و نازوات قرآن ایل بوریف المدبرات امران یعنی المدبرات اسنی عشر برجن و سبعت سیارات اینا اصطلاحاتی است که بعد از ترجمه یونانی های و نجوم وارد اسلام شد که اصلا واضحه رواه و لذیع هر بلالی و نهار و لذیع هر و این جزو مدبراته به امر الله عزوجه و بعد علم القرآن و بعد علم القرآن حالا دقت بکنیم ما یکون اشرف من علم نجوم <تصفيق> تو روایتی در حجبال روز خوندیم ایا کن و تعلم علم نجوم و اصلا خوندیم صاحب جواهی صاحب وسائل عنوان باب باب تحریم تعلم علم نجوم عنوان باب وسائل تحریم و تعلم علم نجوم حالا در این روایت, روایت نزهت العوام و بستان الکرام آمده که بعد از علم قرآن اول قرآن در دو جوب یعنی از فقه و همه علوم مثلا بالا سر علم و بعد علم القرآن ما یکونو اشرف اشرفو من علم النجوم و هو علم و والعوصیاء و رسط الانبیاء الذين قال الله عز و جل و علامات به هم یهتدون و نحنو نعرفها در علم و ما ندخروهو فقال له حارون بله علیک و موسا حال علم با تغیرون در و عوام الناس حتى لا یوشنهو عليك و عوام العوام تنفیز کنای از این که مثلا ارزیش بیار پایین مورد این بود را. عبارت شد چیز دیگه باشه وقت تا حاضر علم برجه الاخرم جدک برجه به هم مدینه بین مردم علم فرش نکن بعد هارم میگه فقط یک مطلبه میخوام از سوال بکنم از جیه از واقعش میگه مشکل نداری میگن نه میفرماد که من میبینم زودتر یا تو موسا نه من زودتر رو به من نزیگم هست. و این تتمش مال همینه مال قصه شهادت هز بعد یک مقداری از روایاتی که ایشون باز در همون فرج المهموم این شماره سی و بود من بقیه اشی نمیخونم یک مقداریشون از ابرار زمخشه نمیخون که همه مرسله بله مثلا از شماره یک نقلم من کتاب ابرار من انعلیم قال من اخترس علم من علم النجوم من حملت القرآن ازداد بیهی ایمانن و یقینا صبح متلا اینه فی اختلاف اللیل و لا الاخر و وقت از رویال امرار این نرم میکنه در این شماره چهل و پنج کان علماء و بنی اسرائیل سرون من علوم علمین علم النجوم علم التب این خلای و علمون هم و اولاد هم الملوك الملوک این درسته این مطلبش از کجا هم نرکه اما بنی اسرائیل نه این مال یونانه این در کتب به ساکه به قدیم هم آمده حالا دیگه بعد باردون بحث نمیشم بله دیگه حالا من میخوام تمام اینار رو بگم خیلی مفصلی یعنی انصافا خیلی طول میکشه و چون یک آخرش بحث یک نتیجه کلی م بکنید اونجا بیشتر متعرض میشیم و مخصوصا روایات مطلقه. اون وقت در روایات مطنق از شماره 65 و پنج به بعد دیگه نخونم بریشه خود شد خیلی طولانی میخواب انصافن کتاب شناسی و نکات بسیار ضریی که خیلی طولانی شده و دیگه ن ما و از شماره 65 به بعد از کتاب درر المنصور سیوتی نقل میکنه اینا مطلقاته لیکن اینها خیلیش عبارات صحابه یا تابعینه مثلا همون 65 ان قتاده قال ان از کلمات اصلا تابعینه به روایت میوزه این روایت عن ابن عمر 66 قال صل تعلمون النجوم و تهتدون به فی ظلمات البر و البحر ثم تو دیگه برش بخوره دوماج نجوم نری همین مردا این ستاره قطبیست، این ستاره کذا همین این تو نحجبال از این بود اگه باشه اینجا در مسادر آمده دیگه اگه خب ای که ها بگیم خیلی طول میکشه از مجاهد مجاهد جزء به, <تصفيق> به اصطلاح تابعینه اینم میگه به مقدار بحر و رو به مقدار اینکه ممن تو عقرب میشه اون. از چیز تو از ابن عباس زاک علمان و یعن ناس میگه ای کاش من بلد بودن نجوم ایشون میگه مردم بلد بودن بله یک نکته ای هم داره که خصطت العرب به خصال الکهانه و القیافه و ایافه و النجوم و حساب فهدم الاسلام الکهانه و ثبت الباقی این دروغ اصلا نجوم و حساب پیش عرب نبود کهانه و قیافه بود اما اونا نبود بعد یکی باز انعلیه ببینید شماره 72 عن علی بن ابي قال نهان رسول الله عن النظر في النجوم اين عن النظر في ما هم داشتیم در كتاب خسال در باب تسعه ما هم داشتیم. اما در ضمن مجموعه و عن ابي قال نهى رسول الله عن النظر في و عن ابن مسعود که الان خونديم و ان انس قال قال رسول اخاف على امتي خسفتن به بالقدر و تصديقا بالنجوم اينم ما داشتیم. این قال نبی من أخرس علم من النجوم اقتبس شعبة من منسه اینو الان در همینجا داریم بعد بله در که قلت ابن عباس این کلام ابن عباس نه کلام رسول الله قلت لابن عباس سنی قال اوسی که به تقوا الله و, و علم بعلم النجوم فإن هو يدعو الى الكهانه شماره هشتادم هم همینه بعد در شماره 82 قال رسول اگر تحرال آها دهیل جزیره من از شرک مالم تغل همون نجوم مگه نجوم بیادی این رو باز گمراه بکنه. در این روایت خاطر نکته دیگه از شماره هشتادو قال رسول الله این متعلم حروف عبیجاد لیراف النجوم لیسله اندالله خلاقون یا من قیامه. این ببینید رفت قرار بین علم حروف یا اعداد با نجوم عبیجاد همون ابجده روایتی که دو شریعت ایجاد آورده مرهم صف رسول الله باشه مثلا این معلوم نیست رو اون زمان باشه متعلم حروف در رواد ابو جاد ابي جاد به جای ابجد جاد صحیحش همونه این راجع به این روایاتی که ما خوندیم خیلی واشام که الحمدلله نخوندیم که دیگه خیلی طولانی بود این راجع به مجموعه روایات حالا من یک جنبندی الان از میام خدمتون یه جنببندی هم فردا ان شاء الله هم میام روزا نداره <تصفح> چون دیگه چند روز شو رو کردیم کتاب مکاسب شیخ رو میاریم از اول به ترتیبی که ایشون روایات نجوبر خوندن روایات رو یکی یکی میگیم که کدوم صحیحه کدوم سعی نیست کدوم قابل اعتماد کدوم قابل اعتماد نیست این مجموعه ای روایاتی که خوندیم چند مضمون داشت چند دسته شد انسافش یک دسته از این روایات روایاتی بود که مثلا اهل بیت بلدند دو خیلی اطلاع داشتن در چیزایی نظر که اونا حتی منجمین هم بلد نبودن دو یک الفاظی کار قول مرحوم مجدسی اصلا در اصلاحات نمودج نیست و از این جور حرفا این روایات ها اجمعا رو السند توی اینا یه ذره درست حسابی ما پیدا نکردیم تو مجل مختلفا هست از امیرالمومنین نسبت داده شده از امام صادق نسبت داده شده به ائمه وسط نسبت داده نشده از امام صادق به موسعر. از رضا نسبت داده شده که اصلاحات نجومی بخاطر البته ما اول اون دوم روایات مطلقه است المنجم وكالكاهن وكالكاهن وكساهره ومساهره وكالكافر این روایت مطلقه این اون اولی که خاص و چی این دومی مطلقه است روایت مطلقه چند تا تعبیر داریم همین یکی مثل این اینم سند نداره بهترین سندی که موقع قبول بگیرن در نجول بلاغه و مشکل متن نجول اینه که همون متن نجول بلاغه ما مثلا مسندن در عملی داریم این اتیکش نداره همون قصه صدرشان هم مثل همین که متن از سنن بیات تو درحالی که این زیادی رو داره تو اماری اصلا نداره اما من صد در منجمان فقط کثرت روایت کرده به منز انزل علی رسول الله صلی الله علیه و از ارسل کرد این هم تو یک نقل همون روایت نه تو یک نقلش هست است تو درحالی هم هست به متن مختلف تو یک نقلش قال سمعت رسول الله این هم جزء روایت مطلقه این هم انصافا به لحاظ سند ثابت نیست روایت, مطلع... این روایت این روایت المنجم انصافا در کتب فقی این روایت در کتب فقی ما فوق العاده مشرور شد صدر شهرت هم. اول در کتاب معتبر محقق آمد بعد در کتب اللهم آمان در رضا شروع شد لکه این مطلقات جایی ندار اینه توی مطلقات یکی نها انه فنجوم فن بود این هم پیش ما فعلا سند نداره سالب که علومی که داریم در کتب ما در کتاب خصال شیعه به اصطلاح صدوق در باب تسعه و تقریبا با همون متن با اختلافی در دورالمنصور المنصور سیوتی هم آمده پیش ما هم سنی ضعیفه جای دیگه هم آمده در کتب اهل سنت مثلا ابی قال نهی حارشه نظر به نجوم انا علی قال نها الرسول نه عن نظر نجوم غیر از اون متن نهتایی تایی جداگانه اومده هیچ خودمش سلامت متن نداره نهی عن النظر به نجوم این هم راجع به این روایت روایت مطلقی دیگری که داریم که اخواف و امتی یا مثلا قیام و سای انده امره تکذیب ایمانن به نجوم و تکذیب للقدر این اسانی متعدد داره و هم داره این یکی هم. در مطلقه ایمانن به نجوم بعض هم هزقن به نجوم یقینن به اختلافات محتم داره این سندش تنها روایت مطلقی ما که اینه مطلقات عدم جواز این که از روایت مطلقات عدم جواز اینه لیکن خب اینم کاملا واضحه تکزیرن بالقدر نفی توحید افعالیست ایمانم به نجوم افعالیست یا توحید ذاتیست نفی توحید ذاتی این ربطی به اصطلاح نجومی که الان نحل کلامه نیست اگر در این, هم. این اسطلاح این مراد یعنی میگه تصورشون این بود که امور از آسمان اداره میشه اون میگفت خدا تصورش این بود خدا از آسمان داره میکنه بوده نه نجوم از آسمان خدایی کار نیست ولذا ما از کردیم میگه در روایت داره که در جلز علامات قیام ساعت همینه اشاره بینه که ایمان ماددیگری پیدا بیزن مقابل ایمان به خدا این تفکرات مادی بر بردم این تک زیبان للقدر و ایمان به نجوم مراد اینه نه مراد تعلم علم نجومه حالا بعد علم نجوم باید میگه نه اینکه انسان مادی پی‌میزنی مثلا ایمان به خدا نداره چون علم نجوم هم نیست اصلا بحث تعلیم علم نجوم دارش نیست بحثی که درش مثلا ایمان به خدا و غیر خدا دیگه حساب نیست این غیر از این روایت در مطلقاتی که در من نحی از علم نجومه هیچ کدو می سنه و رو, سند رو, سند رو. بحث بشون در مطلقاتی که نهی از تعلم علم نجوم شده جز این یکی ایمانن به نجوم و تکذیب دلقدر این هم متحدث سند داره هم سنده معتمر هم داره حسین اون سندهش از این روایت دیگه هیچ کلوم از این روایت روایتی که وارد روایت شده به اصطلاح صحت سند نداره این راجعه به این بقیه روایت فردا و آیات انشاءالله فردا کتاب مکاسب آقا خواستم بیارن مکاسب شیخه میخونیم دونه دونه احادیثیت که ما خیلی مخصر اون مقداری که شیخ خورده دونه دونه احادیثش ارزیابی همجا هاچه کنیسی سقیم اون چطور چه حالی داره چه مستقی داره اونجا اینشالا بگه نکنیم و سالالله عنا محمد و عاده تاریم با دست توز ماشین خیلی این که من این پرنسو میتونم از زنگ کافی داریم